الحمد لله الواحد الأحد الفرد الثمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في فلم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على خیر خلقی و بریت سید سیدنا و مولانا حبیب اله الالمین عبل غاسم المصطفى محمد <تصفيق> صلی علیه و وآلہی و سلم سیما ناموس تهر و امام العصر حجت حبن الحسن العسکری المهدی عبوری لطراب مقدم حلیت لعنةالله على أعدائهم اجمعين من العان لا قيام يوم الدين خب عرائ ما در این های نورانی ماه مبارک رمضان یه شرح کوتاهی بر موعظ و فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبا در نامه سی و یکمه نهجل که شبهای قبل عرض کردم این نامه سراسرش مملو از مطالب حکمتامیز و ناب دیشب به این جمله رسیدیم که گفتم به نظر میاد که این توصیه حضرت امیر علیه السلام خب خیلی سخته و در توان هر کسی نیست به خاطر این حضرت ابتدا میفرماید که و اننس تعته اول میفرمد که اگه ميتوني همین خودش نشون میده که هر کسی نمی تونه این توصیه رو عمل کند و ان تاعت ال یاکونه بینکه و بین الله زونمت ففعل. فهمت روونش اینطوری میشه میگه که اگر میتونی که هیچ وقت به غیر خدا رو نزنی انجام بده هیچ وقت در خانه غیر خدا نری از غیر خدا چیزی نخوایی فهمت انجام بده نگرانم نباش فعن نکرد مد کن قسمک فهم اونی که خدا تقسیم بر تو کرده مقدر کرده بهش میرسی و در خونه غیر خدا نری و آخزون سهمک و اون سهمی که از این دنیا خدا برات نوشته به دست میاریم روصه این یک کلام بلندیه که در دسترس همه نیست. دیشب تیشب بالا چقدر وقت اجازه میداد راجع به این صحبت کردم. بنا شد یه شب دیگه ام راجع به این کلام یه نکاتی عرض کنم. سلمان یه فرمایشی دارند و می فرماید که پیامبر منو به هفت چیز وسیعت کرد اوسانی سلمان گفته خلیلی به سبعت خساد خلیل یعنی رفیق جنجنی آدم رفیقی که باش نداره خیلی نزدیکه بهش می میگن خلیل حالا سلمان از پیامبر تعبیر میکند به خلیل میگه پیامبر منو به هفت چیز سفارش کرد بعد هم هی تحکیت میکرد که لا نه علا کل حال من می در هیچ حالی از این هفت چیز فاصله نگیر قفلت نکن. حالا هفتاش که وقت زیادی می گیرد و من اگه از یه دونش که مورد نظرمه مثلا یکیش این است که حالا هی سبا هم هم هم هی نگی میگه به من پیامبر می که بالاتر از خودت نگاه نکن همیشه به پایین تر از خودت نگاه خیلی جمله خوبی این خیلی نیازه بر ما. اوسانی ان انظر الا من هو و دونی ولا انظر الا من هو و فوقی اما تو در امور مادی در امور معنوی نه در امور معنوی اصلا قرآن میگه که شما خود پیغمبر رو الگو کنید طبقا تو معنویات آدم باید بالاتر از خودشو ببینه یعنی در حجیبه شما بالاتر از خودتو که میبینی خجالت میکشی از اعمال خودت خاطر این خدا میگه لقد کان لکم فی رسول الله اصفتون حسند میگهد خود پیغمبر رو الگور کنیم چون معنویات کم نمیاد ببینید معنویات برای همه هست الان ما هممون امشب بخوایم نماز شب بخونیم دعوا نمیشه درگیری نمیشه همه هممون بریم خونمون نماز شب بخونیم زد و خرد نمیشه هممون بریم خونه دو جز قرآن بخونه اختلافی نمیشه. هممون مثلا ماه رجب و روزه بگیریم اصلا مشکلی پیش نمیاد. اما هممون بخوان بریم قیتری خونه بخریم چاقو کشی میشیم چون نیست که منجا فرصا همه تیرونی ها بخوان برن خونه بخریم اصلا دیگه قمه میارن آدمی که کشته میشه چون میگن ما بعد هر جده شده اینجا خونه داشته همشه. مادیات تضاهم داره همه دعوام سر همینه دیگه هر چی قتل و خوندیزیه سر همینه که مردم به پایین تر از خودشون نگاه نمیکنن به بالاتر از خودشون نگاه میکنن درگیری میشه امور مادی میگه به پایین تر از ما زیاد ها مثلا اکثر مردم پایین تر از ما چیزی که از ما همش بالاتر از خودمون نگاه میکنی آدم پایین تر از خودشون همش شک میکنه خیلی حاد خوبی داره چون من پایین تر از خودتو نگاه کنه همش شکر میکنی مثلا برو بیمارستان این قسمت شیمی درمانی برو و این مردم بزن میگه صد هزار مرتبه شو اصلا دیگه خدا رو میخوای بلفی اصلا خدا خدای بابا چقدر به ما لطف داره این پایین طرف خودت نگاه کن همش شکر میکنی مثلا برو قبرستان ببین آدم ادمش پنج تا تو تصادف داغ دیده پنج تا شو از دست داده نمیدونم اصلا میگی خدایا صد هزار مرتبه شو یعنی یه پوینت طرف خودت نگاه میکنی از خدا ممنونی احساس خوشبختی می کنی حسن میگی چیه مثل من چون میبینی چقدر مردم گرفتارن اما آدم وقتی بالاتر از خودش رو نگاه میکنه، همش حرف هرس می زنه همهش قر می میگه این چه خداییه میگه این رو یه رفیق ما داشته می رفت این بالاشر این خونه ها رو که میدید آه می کشید هی به من میگفت خدا ما رو آورده برای تماشا حرص بخوریم این نمیخواسته حال به ما بده این میخواست ما رو به هی این ها رو به ما نشون میده ما رو به جلیز ولیز میده میگفت لامصف چه کناه هایی چه میگه کجا ها مردم زندگی میخوری من توجه بفرمی پیغمبر میگهد نه به پایین تر از خودت هفت تا توصیت آقا یکی از اینا قشنگ‌تر اما یکیشون است که صحبت ماست و ان لا اسال الناس و ان میگه پیغمبر به من فرمود از مردم هیچی چی نخوا هر میخوای از خدا بخو این سوز بهت میده آدمی که از مردمی که نمیخواد آقا تو راز و نیاز با خدا سوز پیدا میکنه چون میگه حرفمو به که نمیتونم بگم فقط به خدا میتونم چون ها که درد دل میکنه سبک میشه انما اشکو مال جناب یعقوبه سوره قران یوسف انما اشکو حزنی و بسی الی الله میگه من همه شکبه ها ما همه شکایت ها ما همه درد دل ها من در خونه خدا میکنم من در خونه خرق سفره دلم رو باز نمیکنم این یه بابیز آقایون می بهش میگه که به او گفت از مردم چیزی نخواه من تو حدیث دیدم به موسا گفتن موسا نمک آشتم از ما بخواد تأمین میکنیم دارد ولی از ما بخواد آشد نمک نداره بیاید نه رو در خونه سایه بگو این و آدم رفته نیک نون نمیبره بعضی زود میرن رو میدازن به این بغلیا که بساط کردن میره میگه که هاچ خانم شما نون ندادیم ما یادمون رفته نون بیادیم اونا هم با ناراهتی و اوقات تلقی و میگم ما به اندازه خودمون اولیم حالا این دوتا رو ببریم ننگم میمونیم تا وقتی شما و منّت میدارن و میدن اینم هی شرمنده میشه دست شما درد نکن دوباره میره میشه اون یکی میگه اونا که دادن کم بود شما زیادین نمیگم بابا باز بز بنداز خودت بعد این دیگه نونو هازمان گفت نه بیا نون نه بود از من بخوام بخوام موسی و پشت مدین نشسته بود که چند روز بود غذا نخورده بود فراری هم بود دیگه با دست خالی فرار کرد اومد پشت دروازه مدین شرد مدین گفت رب به اینی به ما رب به اینی به ما انزلت الیه من خیرن فقیر گفت خدای اگه یه خیری از تو به ما برسه من در نهایت دیگه فقر رو اتیاجم واقعا چند روز غذا نخورد. قسم میخوره امیرالمومنین زین این آیتو ناجبه علاقه. قسم جلاله میخوره میفرماید که موسا چند روز بود غذا نخورده بود یتی که نور میخواست که صدق بجو کنه. اما در خونه مردم نمیرفت، در خونه خود خدا هم فرستاد دیگه دخترای شعیب اومدن دید نمیتونن رو آب بدن. حالا کوشنشم بود زعف هم داشت بگه قیور بود دیگه دید این مردا همه اومدن جلو اینا زنای با حیام نجیب عقب وای سادن جلو نمیان اومد جلو سلام کرد گفت مشکلتون چیه با ما گسفندان رو نخواهیم آب بدیم نمیتونیم رفت جلو آب با دل انقدر آبون گسفندان سیراب خانوما تشکر کردن رفت. دخترهای شاید بود رفتن به باباشون گفتن که یه آدم قوی <تصفيق> قوی هم بود واقعا و امین دوستگاه چشم پاک گفت ما رو کمک کرد اینو رو صدا بزن رو بهش بده دخترها آمدن گفتن بابامون پیغمبر کار داره شاید پیانبر بود یه غذای چرب و نرم اول بهش داده خب بیا از تو به من بگو دیگه بگو منت من تو می میگن تو رو حالا تا این ناز کن بگو آقا من سیرم میلم میگن آقا تو رو خواهم دیگه یه چیزی باش حالا به زور بهت میدم بعدم گفتش که هر کدوم از این دخترهایی منو میخوای به عقدت در میارم به شرط اینکه که هشت سال برای من کار کنی مهرشو خب اگه ده سال کار کنید که کرم تو دیگه ولی هشت سال دامادم شد صاحب همسرم شد بشکتن نمک آشد از ما امیر المومنین بگون میفهمت نترس همونی که خدا مقدر کرده بهت میرسه ولی عزیز میمونی. من از امام باقر حدیث نوشتم لو يعلم السائل ما في المساله ما سعل اهدا. عهدا اگه مردم بدونن موقعی که رومین دادن چقدر خار میشن هیچ از هیچ چی چیزی اگه بدونن آقا الان مثلا من اینجا واسه خودم عزت دارم دیگه میام و میرم اما خدا نکنه آقا با یکی از اینا من کار داشته باشه. میام میگم آقا آقا من یه عرض میگه بیا دفتر <تصحیح> از همونجا شروع میکنه توجه مي... کار نداریم بلند میشه وای میسه سلامم میکنه. اما تا میگیم که هاج آقا من یه عریضه‌ای داشتم میگه نه اینجا نمیشه بیا باید با باید دفتر حالا بعد دفتر میریم دفتر میگن هاج آقا جلسات بشین تا صداات کنه آیداد میدم یعنی ساعت من پشت درش نگاه می‌داره منو رابط آخرام میگه نمیشه اگه مردم بدونن آقا تو درخواست چقدر زلت هست هیچی از هیچ کسی چیزی درخواست نمیکنه. یک گروه آمدن به پیغمبر گفتن که یا رسول الله زمانت کن ما اهل بهشت باشیم حضرت فهموندن من زمانت میکنم به یه که من زمانت میکنم شما اهل بهشت باشیم گفتن شرطش جیه گفتن از هیچ کی چیزی من اینا کارشون رسید در روایت دیدم کارشون رسید به جایی که بالا شطور که بودن این تاز... چون شطر رو خوابوندن خیلی سخته این تازیانه که می دادن به شطور را بیفته این میافتاد افتاد رو با اون زحمت می تازیانه رو بر می داشتن. به اونی که داشت اونجا رد میشد نمیگفت اون تازیانه رو بمونه دفعه جوای دفعه دیگه نشد میشد دیگه اون دیگه کاری نداشت که بگه آقا بی زحمت دیگه من این شترو نه نه رو میخوامون تازیانه رو برد پیش دوباره شطر رو بلند نمیکنه من تو حالات مرحوم امام دیدم که یک بارم نشد از خانومش چیزی اون خوبه خانومش تو آشپزخونه بوده، همون تو سرگذشت های ویژه از زندگی تو توشپزخونه بود خودش با میشه میاد چی می اون ناراحت هم میگه می آقا آقا میگفتین من میگه می نه من کار خودم و خودم میکنم به کسی من گفت به من گفت سلمان میگرد الله اصل ال ن از مردم چیزی نه اینخبرا هر کسیی نمیتونه. پسه نمیتونن ب... میگه انسته تحتر اما اگه در خونه مردم میخواییم برین الان چیزی الان میخوام عرض کنم بعد اونا رو وسیله ببینی بگی کار دست خدا هست به یکی رو بندازی بگو که آقا کار دست خداست. اگه خدا بخواد به وسیله این کار ما اگه خدا نخواد در خونه این هم بریم نمیشه این توحیده اینه این شرک نیست این شرک نیست میگه این وسیله است. اما تو میگه اگه میتونی نروها تقییه حالا میخوادی که میگه من نمیتونم من بعد برم رو بندارم اون ایمانو ندارم اون اعتقاد رو ندارم اون یقین رو من ندارم حالا خیلی جا که میری پولم هم میده اونا که هیچیه مثلا شما میری دکتر پولش هم بهش میدیم اون که اصلا هیچ منتی نیست آدم مریض میره دکتر چهل تومن بیس پنج تومن نزم چقدر ویزیت هم میده اون که اما همونی وقت نه به یکی میخوای رو بندازه یک کاری برای انجام بده بدون مزد اون رو باید وسیله ببینی ما آقایون انقدر عادت کردیم که رفتیم در خونه این اسباب در خونه این وسیله ها کارمون را افتاده کم کم اون وسیله ها رو میبینیم و خدا رو دیگه نمیبینیم این خیلی اراده بزرگیه میگه که اگه فلانی نبود من اونجا مرده بودم دیگه خدا رو نمیبینیم میگه اگه لطف اون نبود که من الان بیچاره بودم میگه اگه انایت دیگه ما اینجوری میشیم بچه شو وقتی میخواد به من بسپوره میخوایم بریم مسافرت میگه که هاج آقا اول خدا بعد شما بعد شما میکنید از این تایدلش بریم میخواد بگه اول شما بعد شما میگه خدا که نه بچه بهش بسپوریم بعد شما همه رو نفله میکنه میره خدا اصلا این, این میخواد دیگه هم همه همه تویی ولی روش نمیشه از اسم خدا رو نیاره میگه اول شما برد بعد همش به شما سبب میگه آج آقا میگه هم یه دونه پسر رو دارم همین هم جون تو جون این آقا نیا یه چون اصلا خدا رو نمیبینیم چرا چون میگیم ما انقدر آقا تشنه شدیم رفتیم آب خوردیم آتشمون برطرف شده آب میبینیم خدا رو نمیبینیم میگیم چی رفت آتش میگه آب تا میگه آقا دیوان آب بخور اذا خدا رو نمبینیم اما امام حسین میگه که انل عطشان اللذی ارویته خدای من همون ای هستم که تو منو سیراب می‌کنی آبم تو خلق کردی اصلا همهش مال تو دیگه بابا همش تیر سر توه آبم تو خلق کردی کلیرم تو دادی دهنم تو دادی اصلا همه مال اون دیگه آقا اگه شما کلیه‌را دادی الانایی که دیالیز میشن زیاد آب نمیتونن بخورن آبم هست نمیتونه بخوره چون دیالیز میشه این توجه بفرمایید اصلا خدا اگه نخواد آدم مرض استقا میگیره هرچی آب میخوره آتشش زیاد میشه میگه خدا من همون گرسنه‌ای هستم که تو منو سیر این توحیده ببین این فقط خدا رو میبینه میگم آقا رفتی خب افطار کرد میگه, خود میگه خود همه رو خدا نون کی خرد کرده همه رو خدا کی حازمه داده کی دندون داده کی مری داده کی مده داده کی سلامتی داده همهش خدا همه چی دست به خدا به این اگرم میخوای در خونه غیر خدا بری باید بدونی همه کار اینا اگه خدا بخواد به وسیله اینا کار تو انجام اگه خدا نخواد در خونه اینام بری نامیدی دکتری من رفتم بالا این میزش نوشته بود که ادوا او اندنا و شفا او اندالله خیلی قشنگه می گفت دوا رو از ما بگیریم ولی شفا رو از خدا بخوایم ما شفا نمیدیم ما فقط دوا میدیم گفتم آقا اینطوری تراب آقا موهاش میریزه میره دکتر پوست میگه من موام میریزه خود دکتره کچله خدا اصلا همون برگردی دیگه خب اگر این داروی داشت چل اگر طبیب بودی سر خود دوار نمودی یکی میره پیشه مشاور میگه بچه من نماز نمیخونه مشاور خودش بچهش نماز نمیخونه اگه اون چیزی بلد بود خب اون رو نماز خون میکرد اه همینی که آقا مشاوره میده نسخ میگه زن من مثلا اینجوریه خواستم مشاوره خودش زن طلاق دو تا قانون دار طلاقه حالا <تصفح> مخواد به شما مشاوره بده خواهی اگه چیزی بلد بود درد خودشو دبا میکرد همه خدا به خدا خدا از قضا سرکنگبین سفراف و زود روغن بادام خشکی می نمود خدا اگه نخواد آقا روغم بادام میخورید یوبوسست دیاتتر میشه همه دست خدا داروم گفت دوبار رو ما میدیم ما دووار رو میدیم شاید ا خوب نشی شاید ا دو دنیا بری ما دووا رو میدیم اما شفا رو از ما نکنین شفا از به خداست. خدا یادت نره شما ش خداست. خوش با حال اونایی که آقا هیچ و خدا رو فراموش کنند همه امیدشون به خداست. ممکنه در خونه این و اونم میرن ولی میگن اینا ها اما به پسرش میگه اگه میتونی دنبال این وسیله هم نریب بکن یه اگه, اگه میتونی دیشو دیشو دیشب یه مثالی هم برای ملک باران اومد به ابراهیم گفت میخوای بارون بفرستن دیگه این آقا وسیله هم خود نورانی وسیله نورانی ملائکه اومدن دیگه گفت نه من خدا دارم پرتین خدا به احتیاج ندارم میگه اگه میتونی بکن امام حسین هم اینطور شد ها اجنه اومدن و گفتن شما کنار وایسا اینا رو بسپر به ما ببین مگی اگه... چه بلای مصیبه اینا میارین امام حسین گفتن بچو امام حسین گفت اگه من بخوام این کارو بکنم قدرت من که از شما بیشتره که چون اگه من بخوام از طریق ما و طبیعی کاری بکنم قدرت من بیشتری از شما خدا تو قرآن میگه آسف برخیا به اندازه ای که آسف برخیا به اندازه ای که سلیمان چشم میشد بذاره رو هم اون تخت بلغیس آورد. این چی شد؟ کجاش باد؟ آیا گل قال لذی انده علم من الكتاب انا آتي ک بهی قبل ان تدا ائی ک قبل از این که پلک بزنی من حخت رو من, من امام صادق زیر این آیه فرمودن این آصف بود اسم اعظم 27 حرف یکی شو به او داده بودن همه 27 هاش پیش ماست شما بینه قدرت اماموسیل چقدر؟ به اندازه آصف قدرت داشته به نظر شما اون که تخت ها بود این وزیر داده سلیمان بود امام موسیقی نمیتونست آقا این سپا رو بلند کنه ببره تو هند بداره زمین همین کاری که اون تخت بلند کرد برد این کل این سیه سال نفر را تا اینا بفاهمن کجا اومدن و بخوام برگردن کربلا امام فکر کنم هفته سالی ساله شده اینطور بخوام پیداش کنن که اینا کجا این رو نمیتونه؟ جورو. اما این آقا تو گودال افتاده یه روبا اومده رو سینش نش <تص> این, این چه ایمانیه این چه اعتقادیه آیا؟ واقعا قدرت او قدرت او به اندازه شیطان بود این کارا رو داره میکنه. قدرت او به اندازه ا... قدرت او به اندازه سلیمان بود از رو نادونی اومدن گفتن آقا بایست کنار بسپور به ما ما میدونیم و اینا رو خب اگه من خودم میکنم چرا شما از شما کمک بکن. مثلا دعا کنم اینا پودر میشن امن ام اینل مستر و لذی یجاب و, و ازا دعا دعای نطبه کجاست اون مستری که هر دعایی کنه خدا اجابت میکنه ازا از اون با دعا میتونه دشمنوشو از بین ببره و این مقدر خدا تقدیر کرده که این بشه ملائکه اومدن گفتن میخویم همه را... همین کاری که ابراهیم کرد بالاترش رو امام حسین میکردون جبرئیل تو گودال اومده بود میگفتش حسین جون کمک کو آقا برو بین منو خدا حائل نشو با... برو برو اونجا که میگفت وزن به رضا یک قرق مناجات بود جبریل اومد اگر میتونی اگر میتونید در خونه غیر خدا هرگز نرید بکن. اما اگه نمیتونی اینا رو وسیله ببین بگو اینا وسیله هم کار دسته اینا نی من امیدم به خداست شاید از طریق اینا خدا کار من را ببین اگه خدا بخواد از طریق اینا کار بعد تو دین میگن اگرم خواستی در خونه کسی بری، در خونه کریم برو در خونه با اصل و نصب برو در خونه یک کسی برو منت سرت نزاره در خونه هر نامردی نرو اینو دست دی دینا حالا میخوای به رو بندازی آقا یه جا برو که کریم باشه اینو قریمت بشمره بعضی غنیمت قنیمت میشمورن. یکی بیاد رو بهشون بندازه میگه سواب داره پاداش داره میگه میگه من این کار رو انجام بدم عجر میبرم اما یکی من نه در خونه در خونه کسی که مننت سرت میذاره تحقیرت میکنه خارت میکنه نرو یکی آمد پیش امام حسن مجتبا خب رو انداختن سخته دیگه خیلی آدم های آقا فطری اصلا از گشنگی شب میخوابن خوشنا نمیتونم به کسی بگنید که نون به ما بده میگه, میگه آقا من گشنه میخوابم به کسی رو میدازم ولی استاد ما خدا رحمتش کنه میگو آب خواستن آدم رو کچیک نمی کنه میگو نون خواستن آره بعد مثال هم میدونم تو خیابون داریم بچهت میگه من قدیما بود دیگه ما هم دیده بودیم بچک میگه من تشنمه میری تو ساندویچ فروشی میگه آقا یه لیوان آب خوردن داره الا اون موقع از این آب فروشیام نبودم آب میدادن دیگه یه لیوان انقدر آقا این ساندویچ فروشی خوشحال میشه اون آبو به تو بده میگه بله آقا جان دینه میره یه لیوان آب میگیره هیچ کوچیک نمیشه چه با روی باز یه لیوان آب میاره میگه بچهش تشنه است میگه آدم کوچیک اما اگه بگه گشنمه هیچ وقت نمیری بگی یه ساندویچ به این بده میگه ناطمعل ایمان بچهت میگه من گشنمه پول تو جیبت نیست میگه الان میرسیم الان میرسیم کن. اما آب نه میگه حسین برای بچهش آب خواست غذا نه خواست میگه آب آدم رو نمیکنه. در شرح اینطور بله روزه <تصفيق> میگه اگه میتونی به کسی رون اندازی امام بیاد رو بندازه انس اگه میتونی به هیچکی رون اندازی ننداز حالا امام استاد ما در دفاع از ابی عبدالله این جاهایی که میرسید میگو آب خواستن استثنان میگو بله اگر حسین میومد قضا میخواست خلاف این بود ولو گشت بود چند بود قضا نخورده بود اما امام قضا نخواست آب خواست میگم آب استثناف همه دنیا <تصفح> چون میگوشم ما... چون شما تو هم بری آقا تشنه باشی بگیم که آب بده من نمیکنن بعد نمی دانم ولی اگه بگی که یه تیکه نون به من بده آدم کوچیک میشه حالا قرار زمینه از تو دین میگن یکی آمد از امام هسن یه چیزی بخواد پته پته پت افتاد سختش بود دیگه آدم نجیب نمیتونه رو بندازه اینایی که میبینی به راحتی رو اینا دیگه پرده حیاشون مناعت طبشون پاره شده چیز نیز آدم به کسی برای رو بندازن این تا به پته پته امام متوجه شد اومد بقلش کرد به سینه فشارش داد تو گوشش گفت برو بنویس <تصفح> گفت راحت مینویسی آدم می‌نویسه راحته کاغذ را مینویسی میاری میری به یکی گفت برو بنویس حذیت هم نمیشه این هم رفت حاجتشو رو کاغذ نوشت مثلا <تصفيق> اینو تا کرد برای اون موقع پاکت اینا که نبود تا کرد که کسی نبینه دستی داد به امام منتظر بود امام بخونه نظرشو بده دیگه امام هنو وا نکرده فهمیدن حاجت تو کم مقضیه پول خیالت راحت <تصفيق> کش با متعل نشه که ببین بعضی آقا جس میگیرن 200 میخواد بخونه تو نظرشو بده گید من بردم دیگه ما همه اینا به سرمون من اومده کاغذ دادم آقا همین یک ساعت داشت آو دو خط ما نوشتیم یه ساعت هم می کنید گرداشت و دیگه جواب نمیدم حالا بگو نمیدم نمیدم دیگه اونو سرپا نگردش امام خوندنش طول میکشه کشه حالا می خونم ها ولی حاجت و که گفت برو خیالت راحت باشه هرچی نوشتی من میدم <تصحیح> بعد <بس خون. تصحیح> چقدر خوب آدم شد در خونه اینجور رو ببرن نه مننت سرت میذارن نه کوچیکت می‌کنن اهل بیت سر و قداشونو دادن به یتیم مسکین اسیر سه روز با آب افتار کردن بعد چی میگفتن گفتن انما ببین ببین تفکر اینا رو ببین انما نطعمكم لوجه الله گفتن ببین ما برای خدا کردیم لا نورید و منکم لا نورید و منکم جزا ان بلا شکورا از شما نمیخوایم تلافی کنین حتی نمیخوایم تشکرم بکنین د... اصل انتظاره میگید دست درد نکنی امام زینالابدین آقا شبا میرفته به خونه پا به رحمه ها نقابن میزد گفتن چرا ن... من نشناسن روز میبینن خجالت نکشن یعنی مجبور نشه به من سلام کنه بگه این همونیه که شبا میاد خوب راحت باشه چی میرد اینجوری انفاق کنه یه جا آقا با نقاب زده امام رفت یکی گفتش جوان خدا خیرت بده نمیدونم چی هستی این امام زینالابدین امام ماست یه شب نیمده حال ما رو بپرسه ما معتقده به امامتشیم ولی تو جوون هر شب نیایی امام بادم نقابش و بعدش بعد از این که از دنیا رفت مردم مدینی دنگه اون جوانه دیگه نمیاد کم کم به هم نگتن خودش بوده <تصفيق> <تصفيق> خود امام زینالابدین بود میومد حرفم میشنید حرفم میشنید ها چی اینجور میاد در راه گفتن انما نطق به ما یاد دادن اینجوری انفاق کنید به قاطرین گفتن اگه انفاق میکنین سه تا ویژگی داشته باشه یکی تسقیرهی حدیث دارم براتون میخونم کار خیلی که انجام میدین کوچیک حساب کن نگی من شکل قبل بگیم نگی ادبس من این برومد کرد کوچیک حساب کن کوچیک که حساب کنیم منت هم نمیذاریم زینبو ببینید آقایون اومد انداخت دستشو زیر این بدن درسته دیگه خدایا این قلیل قربانی رو از ما به کرم خوچی کتاب کرد خود بیدارید زینب و قرآن خیلی مسلک بود سلام الله زینب سلام الله خیلی مزماکه قرآن راجب امام حسین میگه که و فدعیناهو به زفه عظیم قرآن راجب امام حسین میگه این زف زفه عظیم اما بیبی میگه که قلیب یعنی <مید> <صدا> عدم بندگی بنده بر کار خودشو کوچ حالا خدا دوست داره بزرگ کنه. ما بعد بگیم کاری نکردیم. حالا خدا دوست داره بگه همه کار کردیم. شما آقا روزه میگیری بعد بگی من کاری نکردم. حالا خدای وقت دوست داره میگه نه خیلی محبت کردیم. این همه تشنگی تحمل کردیم همه گرسگین. اما تو خودت که نرد کار خودتون رو به تو بعد کار تو پوچ حساب کنی زینبی حرکت کنی تصغیر هی که ما کاری نکردیم همه رو خدا کردیم ما وسیله این ما چیم ما مرچی داریم از خداست و تصغیر اگه یه کار خوبی کردی بپوشون همه جا نرو بگو رو طرف میره نه بپوشون و تعجیل اگه میخوایی کار خوبی بکنی عجله کن گوارا میشه دیگه بعضی آقا میخوان پول بدن شما جایزیه بگیر اما اینقدر پول میدن دیگه به سیسمونی میرسه بابا بده دیگه بابا هی hey میگه حالا اون هفته بیا سر بزن بابا ما مخوایم عروسیمون هفته بله تو میگه حالا اون ماه بیا سر بزن آخر بگه برا برای سیسمونیش <تصحان> اگه سیسمونی به قاتل بگر حفن رو دفنش میشه. عجله کن اون که میخوای بدی عجله کن بده گوارا بشه شما سیره احل یک کسی اومد پیش امام رضا اینقدر خجال خراسانی هم بید اینقدر خجالت میشه تو همین مدینه چون نجیب بود آخر گفت یکنر از سرخ و سفید میشد گفت من فقیر نیستم آ. راه زنم مالم رو بردن اومدم هج دوز به مالم زده نه محتاج باشم خیلی هم وعد مالیم خوب شما یه پولی به من بدین چون من نمیشناسم کریمی مثل شما من برم خراسان اگر خواستین از همون جا معادلش رو حواله میکنم بیارن اگر هم خواستین معادلش رو صدقه میدم همش مال شما از همون که همینجا بایست رفت رفتو از پشت در یه پول خیلی سرشاری 4000 دینار مثل که من برم اینجا گرفت گفت این خراسانی کجاست این پول رو بگیره بره این وقتی از خونه من رفت بیرون من میام تو اینم گرفت وقتی گرفت آقا بهش فرمودن نمیخواد حواله کنی نمیخواد صدقه بدی حلالت باشه برو سفا میکنه خدا داره میبینه دیگه یعنی چی الان برین صدقه بدی من دارم برای خدا انجام میدم خدا داره میبینه بگم بروی همین مادرش صدقه بده گفت نه صدقه میخواد بدین نه میخواد حواله کنی فقط بری بیرون من بیرون اینم ای از پشت در خشک کن که آقا نمیدی رفت حضرت که اومد این اصحاب گفتم آقا پول قابل توجهی دادین کمم ندادین چرا روتون رو بوشندین حضرت فهمدن این نجیب بود من زلت سوالو رو نتونستم بار تو صورت این ببینم من عذیت میشدم این نجیب بود خار میشد. گفت زلت سوال نمیستم تو صورتش بود. قاملت چی بودم اینا که تی روزه بخونم خیلی بخواد از صبح گفتم امشب برم بیت الحسن دلا رو ببرم در خانه حضرت زهرا. بای بای بای بای بای بای بای نمیدنم دیگه از کجا چجوری مرحوم کمپانی بوده دیدم اینجوری روزه خوب میشه از اینجا شروع کنم مرحوم کمپانی گفته ولست و ادری خبر المثماری عالم بوده دیگه استاده حضرت آیت الله بحجته عاشق محمد حسین شعر گفته ولی شاعر که نیست استاد آیت الله استاد علامه تبا تباییه. خیلی از بزرگان آقا شاگردان آشق محمد حسین قراری اصفهانی بودن اما او تو شعر میگد و لفت و عدری خبر المثل. مثل که ازش سوال کردن عالم دینی بوده دیگه ازش سوال کردن اون دری که به سینه فاطمه خورد میخ هم داشت راست راست مده میگن میخ به سینه فاطمه آله میگه. این تو شعر بله جواب میگه میگه ولست و خبر میگه من نمیدونم اون در میخ داشت یا نداشت چون میگه در که به سینه من نخورده که در به سینه فاطمه خورده کی میدونه میگه هر کی میخواد بدونه باید بره از اون سینه بپرسد. سال سطرهاه. برین از اون سینه بپرسه ولی بعداً میگه وقتتون رو تلف نکنیم اون سینه اسرارش رو به شوهرش نگو. به دخترش نگو. به پسرش نگو. به محرمش نگو. به شما که اصلاً اون نمیگه چی شده. سال صدرها اما بعدش میگه خزینت الاسرار اما بدونین اون گنجینه ای اسراره همه اسرار رو با خودش زیر خاک پود همش میپوشون یه روز یه جمله برای ها بگم یه روز سلمان اومد گفت یا امیر الممنین. حال فاطمه چطوره تو مسجد همین تا سوال کرد امام فرمودن سلمان تالا شده بری خونه خانومت از تو رو بگیره چی میگیم یه خواهدی می کنیم برای پیش اومده بری خونه خانوم چادر سرش کنیم گفت چی میگیم گفت الان نود و پنج روزه من صورت فاطمه رو نبیرم فاطمه از من دو میگیره میگوشه نمیدونم تو کوچه چی شده نمیدونم بین در و دیوار چه از پاسی روزه همش فاطمه میگوشه همش میگوشه ده... تا تو پوشون تا کی مخفی کرد تا شب قصر اول البته اونجا نهایت احتیا اولام فرمودن شب منو قصر بده خب شب تاریک چیزی پیدانی بعد فرمودم بدنمو برهنه نکن. از رو لباس امیرالمومنین برهنه نکرد فاطمه رو تو تاریکی نوری هم نبود اگه بوده نور ماهتاب بوده. تو تاریکی اسما آب می‌ریخ علی فقط دست میکشید از زیر لباس میشه فاطمه کم همین کافیه از زیر لباس دست گفت علی تو طاقت نداری سینه منو ببین تو طاقت نمیاری نمیتونی همین از زیر لباس دست پکر باز مخفی میکرد همینجوری که آقا داشت میشفت یه جا دیدن دست هی هم. یه جمله برای جب اونا بگم شب گریه کنن جب شما امشب هر چقدر بخواییم میتونین گریه کنید. اما بچه های علی تا میومدن گریه کنن امیرورمانین و حسن جان حسن جان وسیعت ما حسن جان رینف جان این بچه ها آسدینا رو میکردن تو دهنشون خدا نالش که داد نزنن، ناله نکنن اما اسما میگه یه جا دیدم خود علی دست از قدر کشید های های بلند بلند خودن آقا به همه میگی آروم گریه کنن خودم بیتابی گفت اسما الان دستم رسید به بازوی برم کرده یه جمله یه جمله بگم اما خواهشم اینه حقشو رو ادا میخوام بگم علی جان یه ورم رو بازوی فاتمه دیدیم اینقدر گریه کردیم اینقدر بیتابی اگه تو میومدی گودال چه میتوندیم اما دخترت بیاد تو گودال قتلگاه شمشیر شکسته ها رو کنار زد نیزه شکسته ها رو کنار زد این لبه ها رو گذاشت رو رگه های بریده ها! آه سلام برسی الله و علیه محمد اللهم صل علی محمد محمد یه راه بدید از اتای کرمی عزیز از اتای دفتری شب مننت سرمو گذاشتن جوانای رو اندلی پوشان